بسم الله الرحمن الرحیم و کل انسان ازمناهو از تائرهو فی آنوقه و نخرج لهو یوم القیامته کتابا یلقاه و منشورا منظور از تائر عمل انسانه ازمناهو از او هر کسی کاری بکنه عملی انجام داده از حوزه خودش خارج نمیشه مسئولش خودش خوبه به نفع خودش بده میداره به خودش عمل اینو گردن دیگری نمیدارند فرابرین مسئله عملی اینجا عمل بیکردن احتیاجه به تذکر نداشت ولی ما نفس عماله نمیذار عمل بکنیم هی با تذکر بده خدا با عبارات دیگه کلمات دیگه سوره های دیگه همینجور هی تذکر بده دیگه. فذکر فا این المؤمنین یه دفعه میگه فایده نداره، دوباره میگه، سه باره میگه، چهار باره میگه تا یه وقتی انسان شرایطی در و جمع بشه که حرف اثر کنه و تصمیم بگیره به عمل حالا کهی بعضی سری پیری تصمیم میگیرن، بعضی سری جوانی تصمیم میگیرن و هیچ وقتی وقت نمیگیرن، افراد مختلف جون اجبار که نیست مفوض به خود آدماست هست، آدم ها به این راحتی ها دست از آدت نفس ام تا حالا اینجور کرده ببعدم خودمون اعدامه به کار مشکل شده برین. ولی خب واقعیت دیگه خدا مکرر گفته. بازم مکرر گفتم اما اثر نمی بخشه دیگه آدم می شروفه و می کارش. کمن کسان که حرف خدا رو شنیدن تصمیم جدی بگیرن از آره ببند دیگه گوش بدیم. تا آدم گوش برنده اثری ظاهر نمیشه. شه. باید گوش بدیم یا اول یا وسط، یا وسط آخر. هرچه دیرتر خطر بیشتر میشه چون عادت قرصتر تر میشه آدم تخلیف از رو سخت تلقی میکنه نمیتونه ادامه ده تا کار بیخته پر اونی که نجات بده ها رو عمله نمیشتر و نمدمی حرفا همه مقدمه عمله اگر این رو بنیمیسیم و بگیم و تحقیق بکنیم اما عمل نکنیم میشه جهالی که عمل نکردن محاسبه میشیم و گرفتار عقوبتی که خدای متعال وعده داده شد امیدواری پروردگار متعال به همان توفیق و کنه حرف خدا رو چینو باور کنیم بار اول گفت ما اطاعت کنیم.